در زمینه تجسم اعمال در روایات باید به این نکته اشاره کنیم که مباحث معاد در واقع به صورت تفصیل در روایات آمده است من اینجا فقط گذرا میگم شما خودتون مشاهده بفرمایید روایات ما صراحت دارد در این زمینه مثلا شما روایاتی که از پیامبر هست که در واقع ستمگری بپرهیزید چرا که ظلم و ستم در روز قیامت به صورت تاریکی ها نمایان می شود یعنی اینه که خود ظلم در قیامت به صورت ظلمت و تاریکی تجسم پیدا میکنه روایتی که ما داریم یا از امام صادق علیه السلام نقل هست که هر که مال برادر خودش رو از روی ستم بخوره و عوض اون رو به اون باز نگرداند روز قیامت قطعی از آتش رو میخوره یعنی مالی که ظالمانه تصرف شد در حقیقت در قیامت خود به شکل آتش دوزخ تجسم پیدا می‌کند و قاسب رو عذاب می‌کند و ما شواهدی را باز داریم مروایاتی که در مورد عالم در واقع برزخ اومده واسه قبر رو داره مطرح میکنه که قبر در همون برزخ هست دیگه در متون ما یعنی همون برزخ که در واقع عملی تو عالم برزخ در واقع ما مصاحب و همراهی داریم که همیشه با ما هست که اون اعمال ما هست و این یا در واقع سبب خرسنده ما می شود که سعادت ما را در پیدارد یا این که آزردگی ما می شود که خدای ناکرده شقاوت را در پیدارد که از امام صادق علیه السلام نقل است که وقتی انسان و رو را تو قبر می گذارن دری از جهان قیب بر روی او گشوده میشه و او جایگاه خودش رو تو بهشت خواهد دید. در این ش... در این حالت در واقع مردی رو با چهره زیبا مشاهده میکنه که هرگز زیباتر از او ندیده. پس به اون میگه تو کی هستی؟ اونم میگه انا ا ا رائوکلحسن الذی كنت عليه و عملك صالح الذي كنت تعمله من در واقع همون چی هستم نیت و عقیده پسندیده و عمل شایسته تو هستم که اونگاه درباره انسان کافر هم در واقع یادآور میشه که اون نیز عقیده باطل و کردار زشت خود را به صورت زشت روترین انسان مشاهده میکنه در واقع این عمل همراه ما هست که اینها کاملا ناظر به تجسم اعمال است خب ما میریم سراغ تجسم اعمال از منظر عقل و علم ببینید ما مطلبی که داریم و باید روی اون مانور رو بدهیم دیدگاه منکران تجسم اعمال رو بگیم اونایی که تجسم عمل رو غیر ممکن می دانند که ایشونلا میخو با عقلی و علمی ها رو بحث کنه نظری بعض از مفسران و متکلمان رو می آورد ببینید من نکته ای را خدمت شما ارز کنم اینه که باید اینجا را توجه کنیم که یه عده از متکلمان یا اندیشمندان در واقع قائل به بقا اعراض هستند و اعاده و نقل و انتقال اون را ممکن میدونن این گروه افراد میتونن تجسم اعمال رو بپذیرند چرا؟ چون که در واقع اعمال هر چند جزء اعراض هستند ولی به دلیل دو تو ویژگی ثبات و اعاده اعراض برای انتقال اعمال به برزخ آخرت هیچ مشکلی نباید داشته باشد خب این مثلا ما مشاهده میکنیم متکلمان بصری این عقیده را دارند اکثر متکلمان معتزلی و بعضی از متکلمان امامیه طرفدار نظریه ثبات اعراض هستن این نکته را و بهش رو میگن طرفتاران نظریه به طرفتاران نظریه فنو اعراض این ها در واقع سخت میتازند که شما سخنان علامه هلی را تو این راستا میتونید مشاهده کنید اگر خواستید ببینید پس ببینید ما یه تفاوت مبنایی اینجا باید اولش لحاظ کنیم بعد من این رو توضیحات را خدمت شما یادآور میشمم و علامه در حقیقت علامه تبا تبایی تو بحث اثبات بقا و نفی تجدد اعراض یه سری عدله عقلی و در واقع علمی را به کار گرفته که اندیشمنان ما اینها را هم بیان می کنند متکلمین نامی ما مثل علامه هلی تو این زمینه مطالب فراوانی را دارند از اون فضا جدا میشم میام فضای جزوه رو میگم. گم ایشون میگه که گروهی از مفسران و متکلمان اسلامی تجسم اعمال را غیر ممکن دونستن و همه آیات و روایات دال بر تجسم اعمال را در واقع تعویل می کنند دلیل اونها دلیل اصلیشون هم چی هست؟ این ادعا هست که اعمال انسان از مغوله های اعراس هست وقتی ما میگیم اعمال جزء اعراض هست ذاتی نیست عارضی هست در واقع میگن که نظریه تجسم اعمال در واقع از دو جهت با مشکل مواجه است یکی اون که وجود عرض قائم به خودش نیست وجود قائم به خود نیست بنابراین بعد از تحقق یافتن از انسان نابود میشه و دیگر چیزی نیست و اعاده بشه این, این یک مقدمه مقدمه دوم اینه که نظریه تجسم اعمال خود اعمال بدون تکه در واقع چیه؟ بر اساس نظریه تجسم اعمال خود اعمال بدون تکه بر جوهر تحقق پیدا میکنن در حالی که این امر امر غیر ممکنی هست ببینید شما الان بخواید موارد رو به ما موارد توضیح میدم مثلا مرحوم تبرسی در مجموع بیان ذیل آیه سیوم سوری آل امران یوم تجد و کل نفس معاملت محضران در مورد نظری های افرادی که میاره در مورد یه سری میگه میگه که بعضی هم گفتن که مقصود پاداش کیفر اعمال هست اما خود اعمال به حکم اینکه که از مقوله ارز میباشند معدوم گردیده و اعادیان آنها ممکن نیست و در نتیجه حاضر شدن آنها در قیامت محال خواهد بود ببینید این که میگن آقا این عمل مجسم می شود میگن چون عمل جز عرضی هست دیگه این دیگه از بین میره علام مجلسی هم شما وقتی مشاهده میکنید در بهارالانوار بعد از نقل نظریه شیخ بهایی در تجسم عمال میگه که محال لانستن انقلاب عرض به جوهر در این دنیا و ممکن دانستن اون تو سرای دیگه نوعی سفزته است چرا؟ چون که دو نشعه دنیا و آخرت با هم تفاوت، تفاوتی ندارن حالا ببینید ما به این توضیح میرسیم پس گفتیم دو تا دلیل دارند ببیند این دو دلیل را ما باید برسیم توضیح اینجا مهم هست خدمت شما عرشبت که اینکه اول میگن که اعمال از مغوله احراس هست اعمال از مقوله احراس هست. بعد از صدور از آدمی هم یا پس از مرگ معدوم میشه و چیزی نمونده که در سرای دیگه تجسم پیدا کنه ببینید مثلا من الان دارم به فرض به فرض من دارم یک سخنی را میگویم این سخنه از بین میره از نظر اینها الان اون آن و لحظهی که ما داریم با هم صحبت میکنیم و شما میشنوید این عمل در واقع من را شما میتونید درک کنید بعد از اون که دیگه از بین رفته دیگه هیچ محملی برای آن نمی‌ماند که ما بگوییم بار دیگر باز می‌گردد این نکته که اینا میگن اول ما باید بینا پاسخ بدیم آیا چیزی به از بین میره یا نمیره یه نکته دوم توجیه که دارن ها یه توجیه... یه توجیه دیگه شون اینه که میگن که آقا تجسم عمل از قبیله تبدل عرض به جوهره که اینم در واقع امر غیر ممکنه تجسم عمل یعنی شما یه امر عرضی دیگه اعمال ما عرضی هست حالا شما این رو میخواید تبدیل کنید به نفس مادی این واقعیت وجودی ما تبدیل پیدا کنه واسه انقلاب گفت دیگه اینم امر غیر ممکنه توج... با چه توجیه؟ با این توجیه که نشعه دنیاوی و اخروی با یک تفاوتی ندارن با این توجیه شما میگه میگید که ببینید مورد اولو که مطمئنم انشالله متوجه شدید اینه که اعمال از مقولهای اعراض هست، ارزی هست بعد از سود آدمی معدوم میشه دوم اینه که آقا شما با تو تجسم عمل دیدید که ما این همه آیاتی که خوندیم و چندتا روایتی که گفتیم اینی که گفتیم آقا این عمل شده جز وجود ما شده جوهر ما ایش آقا اگر اونها میگن مخالفان تجسم اعمال میگن میگن عمل که ارزی بود حالا شما میخواد بگید تو قیامت این عمل عینیت پیدا میکنه یعنی شما به چیزی که عرضی بود این رو کنید ذاتی و جوهری این امر امرا غیر ممکنه چرا غیر ممکنه؟ مثلا در واقع بحثی که وجود دارد توضیح این بود دیگه دو نشه دنیا آخرت با هم تفاوتی نداره مگر اینکه گفته بود دیگه مگر از این جهت که مرگ و احیاء دوباره میان آن دو فاصله ایجاد کرده و این تفاوت نمیتواند وجه اختلاف احکام یاد شده باشد حالا ما اینا رو باز توضیح میدیم که کامل روشن شود ببینید ایشون تو بحث تحقیق و بررسی میگوید که حقیقین است که هیچکس از دو اشکال بر نظریه تجسم احوال وارد نیست چرا؟ چون که به مقتضای براهین عقلی آنچه تحقق یافت و لباس هستی بر تن کرد دیگر به هیچ وجه معدوم نمیگردد ببینید اینها میگن که ما یه چیز داریم دیگه قبلا ما اگر یادتونه گفتیم دیگه اما چیزی که ذاتی شد دیگه ذاتی شیع اونلا یختلف و ولا یتخلف و. یادتونه که گفتیم قبلا دیگه چیزی که ذاتی شد دیگه ایت تغییر و تحولی در آن صورت نمیگیرد این به عرصه هستی پای نهاده است الان اینا میگن عمل دیگه شما عملی که انجام میدید این از بین رفته معدوم شده عارضی شده خیر این هر حرف اشتباهی است هر آن چیزی که ببینه در آن چیزی که ما هر کاری که انجام میدیم این دیگه اومده به قامت هستی بر اون پوشاندهیم لباس هستی بر تن کرده این معدوم نمیشه برای همینه که ما باید دقت کنیم اینها در قالب هستی می شود دیگه این مطلبی که ما باید لحاظ کنیم اینه خب و ایشون میگه و در آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته است همیشه باقی خواهد مان و تریان عدم بر آن در آن مرحله از قبیل اجتماع وجود آدم است که محال بودن آن بدی است تریان همون تریه دیگه عارض شدن دیگه آرز شدن عدم برون اون آقا چیزی که دیگه اومد قوامت هستی پوشید این باقی خواهد بود دیگه اصلا بس عدم شما نمیتونید بگید این محال میشود چیزی که وجود هست دیگه عدم نیست که قرآن هم سراحت دارد دیدید که من تو اون روایت هم گفتم از ائمه آمده ما داریم که همه چیز در امام مبین ثبت است وقتی میگیم همه چیز در امام مبین ثبت این دیگه برای ما کتاب مبین امام مبین این موارد یعنی موجوده دیگه شما این آیات رو وقتی بازخوانی کنید دقیق متوجه شوید می‌بینید که چیزی از بین نمیرود درسته؟ چیزی از بین نمیرود چون دیگه قامت هستی بران پوشیده شده است دیگه که میفرواید که و ما يعزب عن ربك من مثقال ذره في العز ولا في السما ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمیمونه نمی حتی به اندازه سنگینی ذره و نه کوچکتر از اون و نه بزرگتر مگر اینکه همه اونها در کتاب آشکار که همون لوح محفوظ دیه و لوح محفوظ علم الهی ثبت قامت شما ببینید سراسر آلم می شود چی؟ سراسر, سراسر تمام کاری که ما انجام می می شود این هستی و اینها نزد خدا ثابت هست اینها از بین نمی رود ببینید ما اگر اینجوری بخوایم بگیم دوچاری خطای بزرگ می شود. کتاب مبین همون علم وسیع پروردگار هست که بهش میگن لوح محفوظ یعنی نگار این حواظشون به این نکته نیست خب پس شقق اول ادعا کاملا باطله میماند مقدمه دوم اینه که آقا تجسم عمل گفتن که بنابر نظری تجسم اعمال خود اعمال بدون تکه بر جوهر تحقق میابند و این عمری غیر ممکنه یا همون تبدیل عرض به جوهره که این غیر ممکن است ایشو میگه‌ها اشکال دوم هم خطا هست. اشکال دوم هم خطا هست دلیل خطا بودن چیه؟ اینه که ما میگه هر چند به مواد جسمانی معتقدیم، لکن معنی آن سخنی نیست که همه قوانین مربوط به نظام دنیوی در حیات اخروی نیز جریان خواهد داشت. ببینید منکران مواد جسم منکران در واقع تجسم اعمال جدا از اینکه عمل را از سنخ در واقع عرض میدونستن یه چیزی هم که باوردارن اینه که آقا بین دنیا و آخرت چیچ تفاوتی نداره خب حالا شما میخواید بین دنیا و آخرت تفاوتی وجود ندارد چیزی که عرضی بود دیگه اعمال ما این اعمال را شما میخواد میگید مجسم میشود ناچارید که چکار کنید ناچارید که این اعمالی که به شکل عرضی بود از بین رفت جوهری نبود ذاتی نبود اینها رو تبدیل کنید به جوهر این نکته رو شما میخواد بگید این شما میگه که آقا همه قوانین مربوط به نظام دنیاوی در حیات اخروی جاری نیست شما نمیخواید نمیتونید این نکته رو بگید و ما بگیم تنها تفاوت چیه تف... تنها تفاوت اینه که فاصله فاصله در واقع مرگ و حیات و اینها هست ببینید شما در قرآن کریم سراحتا به این نکته اشاره شده است این سراحت آیات رو ما حتما بهش توجه کنیم در آیی 48 سوری مبارک ابراهیم میخوانیم یوم تو دل الارض غیر الارض و سماوات و برزول الله الواحد القهار در آن روز در آن روز که این زمین به زمین دیگر و آسمان ها به آسمان های دیگری مبدل می شود و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می شود این الان در بحث مجازات این در واقع خدمت شما ارش شود که منکران و ظالمان و ستمگران را می گوید منطقه شما به اون تبدل توجه کنید ببینید تو اون روز در واقع انسان با یه شرایط تازه تو عالمی نو قدم برمیداره عالمی که همه چیز یعنی خیلی از امورش با این عالم تفاوته وسطت وسعت و کیفرهاش همه متفاوت هست دیگه این مطالب اینجا مهم هست حالا یه اده میگن که به معنی یه از مفسران میگن آقا بحث. بروز انسان ها در برابر خدا برزول الله الواحد القهار که بس بیرون اومدن از قبرها هست یا بس ظهور تمام وجود انسان و درون برونش توی اون سحنه هست دیگه یوم هم بارزون فال الله من هم شاهی که اون یوم تبلس سرائر هست دیگه که در واقع همه امور روشن می شود اینجا بس تعبیر بروز ظهور و مقایسه تفکر ما هستا نه مقایسه با علم خدا چون همه چیز بر خداوند آشکار که هست علم هفتالا مطلق است. خب این آیه بیان میکنه که نظام اخروی در واقع قوانین مخصوص خودش رو داره برخلاف قائلان به منکران به تجسم اعمال ما میگیم آقا اینگونه نیست که همه چی اینن شبیه هم باشد نشعه دنیاوی و اخروی و به تعبیر ایشون یه رشته از قوانین که اقلانی محض نیستن رو در واقع با مطالعه واقعیت موجود تو این جهان به میان و در آخرت بگونه دیگه هر هستند. در واقع این که ما بگیم برخی از موجودات امکانی جوهر و برخی دیگر عرز, عرز هستند و عراز تو حسی خود قائم به جوهر هستند. نمیتونن روی پای خودشون وایسن شما دارید اینها رو بر اساس در واقع تفکر دنیوی و مطالعه نظم آفرینش میگید اما وقتی دیگه توی نشعه اخروی ما قرار گرفتیم توبت دلال ارض و غیر الارض شد غیر الارض و سماوات شد در واقعیشون میگه چه مانعی دارد که آنچه توی این نظام نمیتوانست قائم به نفس باشد در نظام دیگر قائم به نفس باشد مثلا میبینید اینجا در واقع دروغ من، خب دروغ من نمیتونه سلام به خدمت شما عرض شود مثلا به یه شکل خود, خود منو مجازات کنه اما اونجا خود دروغ منو مجازات میکنه. به شکل قل و زنجیر در میاد یا باغ و حور و, و قصر و اینها. ببینید ما گاهی اوقات تمام خطاهای ما از اینجا نشات میگیره که همه چیز رو میخواین با عقل تجربی بسنجیم. یعنی انگار این امور رو خیلی محدود می‌بینیم. به همین خاطر ما نباید وضع موجود تو نظام دنیاوی را مقیاس قرار بدیم و به تعبیر ملا صدرام هرگاه صفتی تو نفس انسان قلب پیدا کرده راسخ شد آثار آن به طور قهری نمودار میشه تفاوتی که میان دنیا آخرت اینه که چون دنیا دار تحصیل و اکتصاب هست خب طبیعتا تبدل ملکات رزیله به ملکات فضیله ممکنه ببینید ما اینجا میتونیم تغییر بدیم اما در آخرت دوران تحصیل و سپری شده یوم لا و نفسن ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا بنابراین انسان با هر صفتی که به قیامت به اون به قیامت میاد و مشهور میشه آثار اون صفت و ملکات نفسانی لاجرم و به طور قهری در واقع بروز پیدا خواهد کرد و به شکل متناسب با خودش و به گونه ای که با شرایط نظام اخروی هماهنگ مجسم میشه توجه کنیم اینا این مطلب مطلب بسیار مهمیه و ایشون برای ما اشاره میکنه دیگه مثالی که میآورد به نظرم مثال دقیقیه آقا ما قذب و خشم داریم. خواهر موقع ما به میشیم ببینید اینها مربوط به قذب و خشم مربوط به روح انسان هست. بود ملکوتی دارد، غیر مادیه، اما این آثار ششوان تو بدن تو میبینید. انسان وقتی میترسد به تعبیر ابن سینا در واقع رفتارهای عجیب از خودش نشون میده. شادیده انسان بترسه مثلا خدای نکرده یه نفر رفته دزدی کنه یه جایی توی یک باقی اون باغبان دنبالش کرده و این شخص از شدت ترس میدوه میدوه از یک دیوار در واقع دیوار سمتری سری میزنه بالای و اون باغبان نمیتونه یا از یک چوب خیلی بلند در واقع طولانی میپرد این اتفاق یا انسان موقع خشم به تعبیرات لاججوادی شاید کارهایی را انجام بده که تو حالتهای عادی رو انجام نمیده مثلا میبینید یه نفر که شاید زوری هم نداشته تو خشم به سه نفر در واقع قوی میشه یعنی اینها گایی قد این که میگید شما اینها شبیه هم هستن به اینها توجه نمی کنن. این نشعه ها رو در واقع لحاظ نکردند این ملکات را ما با توجه کنیم و آن چیزی هم که ایشون مطرح می کند از شیخ بهایی نقل میکنه اون بحث تجسم اعمال که توی روایات هست ما با بهش توجه کنیم آقا اینه که حقیقت یه چیزه که تو های مختلف آثار گوناگونی داره مثلا شما توی قرآن میبینید که آمده است که و ان جهنم بالکافرین این آیه که در سوره توبه آیه در واقع آیه 49 اون هست و در آیه 54 سوره انکبوت آمده است اینی که در واقع جهنم کافران رو احاطه کرده خدمت شما عرض شد که یک دسته از مفسرا میگن کنایه از اون که عوامل اسباب ورود به جهنم یعنی گناهان اون رو احاطه کرده اونها را کرده بعضی ها میگن آقا خدمت شما عرض شود که حوادث حتمی آینده به صورت مازی و حال بیان میشه یعنی به طور قطع در آینده جهنم اونها رو بر خواهد گرفت و ایشون اونجا بیان کرده که آقا اسم فائلی که ما داریم به معنی استقبال نیست محیطی که آمده است دیگه که به معنای استقبال نیست بلکه منظور اینه که همکنون جهنم بر کفران احاطه داره چرا که عقاید باطل و صفات و اعمال زشت اونها تو همین نشئه اونها را داشته کرده و همین ها در حقیقت دوزخ اونها هست که حالا در سرای دیگه به شکل آتش و مار و عقرب و اینها نمایان می شود که در روایات ما هم این اومده خب آیت الله سبحانه یه بحث رو مطرح میکنه به واسه علمی تجسم اعمال را از همون بحث بقای انرژی استفاده میکند که آقا جرم انرژی قابل تبدیل به یکدیگر هست دیگر هستن که ما با دقت کنیم مفهوم بقای انرژی قانون بنیادی هست که چیزی در عالم از بین نمی روید و وقتی ما به این توجه کنیم تیه تغییرات که تو طبیعت رخ میده انرژی کل تغییر نمی کنه. یعنی یعنی من اگر الان فریادی میزنم این فریاد من از بین نمی روید این در واقع خدمت شما شود که اون انرژی باقی هست و حتی به جایی رسیدن که میگن حضرت داوود صدای خیلی خوبی داشت حتی میتونن صدای حضرت داوود رو هم بازخوانی کنند اون فرکانس صداها و اون دسیبل ها و اینها رو در واقع الان بعضی از اندیشمندان در صدد اون هستند و این قانون میرسونه که آقا چیز از بین نمیرود چون نا گفته بودن از بین میرند دیگه منکران منکران تجسم امور ببینید یه مطلبی ای مطرح مطلب میکنه که حقیقت کار در انسان چی هست من اینا خیلی گذران میگم مطالب من این مقدار طولانی شد اینه که آقا خدمت شما هر چود بر احساس مطالب علمی میگه ایشون میگه حقیقت کار در انسان بارد از تبدیل ماده به انرژی مقدار انرژی هم از نظر علمی در واقع ثابت و پاور جا هست ماده و انرژی هم در واقع دو چهره واقعیت هستن انرژی هم تو شرایط خاص به ماده تبدیل میشه تبدیل شدن اعمال آدمی هم تو شرایط خاص قیامت امر ممکن و شدنی هست و ایشو میگه البته نباید فراموش کنیم که حوادث و حقایق حقایق مربوط به جهان آخرت از حقایق قیبی بوده و درک درست و کامل اونها برای بشر بشری که توی حسار طبیعت در واقع محبوس و محصور هست ممکن نیست اما خب شما به واسه علم تجربه میتونید اینو بیاد اثبات کنید حداقل اینه که کلا نمیپذیرند موارد غیبی را میشود از این منظر در واقع به اون پرداخت خب دو تا پرسش ایشون مطرح میکنم پاسخ به دو تا پرسش آقا اینه که اگر چه مساله تجسم اعمال از نظر عقلی و علمی امکان پذیره حالا ما یه سری آیات روایاتی داریم که اشاره دارن که واقعیت پاداش و کیفر در حقیقت همون تجسم اعمال و تمثل ملکات و اندیشه هست. آیات و روایات فراوانی هم در واقع ظاهرشون یا سراحت دارن بر این مطلب که کیفر و پاداش اخروی به صورت وضعی و جعلی هست. خب ببینید ایشون نکته رو را مطرح میکنه که آقا ما راه صحیح تو فهم آیات و چگونگی وقای عالم قیامت اینه که ما مجموع آیات را ببینیم نکه جزئی باشیم در واقع تکه تکه ببینیم ما باید تمام این اینها رو ببینیم ببینید ما باید دقت کنیم ما نمیگیم که خدمت شما عرض شد که فقط و صد درصد تجسم اعمال اینه که بله یه موقع ما به صورت تجسم اعمال می شود گایی به صورت وضعی و جلی هست و ایشون میگه که هر دونو از پاداش و کیفر تحقق پیدا می کنه. زیرا هیچ مانعی ندارد که در کنار پاداشها و کیفر هایی که نتیجه طبیعی خود اعمال هست که اینا به صورت تولیدی یا به صورت تجسم و تمثل هست پاداش ها و کیفر قراردادی جلی هم باشد که حالا خداوند بر اساس علم و حکمت و فضل و رحمت خودش اینها رو مقرر میکند ما با این مشکل نداریم دومین پرسش در واقع پرسش و اشکال که عوامل تکفیر گناهان مثل شفاعت و اینها که میگه گناه های ما رو میپوشونه چگونه قابل توجیه؟ حالا شما وقتی میگید که اقوبت های اخروی تجسم اعمال هست ولی عوامل تکفیر در صورت قابل توجیه است که کیفرها امور قراردادی و جعلی باشند یعنی آقا شخصی که به فرض میگوستاری کرده است خدای ناکرده شراب خاری کرده است این ما نمیتونیم از مجازات اون چشم بپوشیم چون این عوارض خودش دارد ایشون پاسخ میده که اعمال خوب یا بد باشن اعمال آدمی چه خوب چه بد تو شرایط خاص در آخرت به صورت غیر از صورت دنیایش تجسم پیدا میکنه این یه نکته دوم دومم آن است که در کنار این قانون قوان دیگر هم وجود داره اونم این که تجسم یاد شده فقط تو شرایط معینی تحقق پیدا میکنه نه به صورت مطلق ما که نگفتیم لا بود کلن تجسمه اینا با هم تیج منافاتی ندارد یعنی ببینید ما دو تا اصل داریم این دو تا اصلا امکان پذیر دیگه اینا با هم منافات که نداره بر اساس موازین عدل و حکمت هست هر آن چیزی که در واقع خداوند صلاح ببیند جاری می شود یعنی همه اونچه که تو این جهان آخرت تحقق پیدا میکنه همه از مشیت و حکمت حق نشت می گیرد همون گونه که ما میگیم آقا قبع قبل از فراریدن رسیدن مرگ مانه از تجسم و تمثل گناه در سرای آخرت می شود ما وقتی توبه کنیم این دیگه در آخرت اون تجسم و تمثل گناه دیگه از بین میره ره شفاعت و موارد دیگه ای تو جهان دیگه از موانع اون به شمار میره این هیچ مشکل نداره که ما اصلا این مطلق نمیخوایم ببینیم اینا قانونیه که از جانب خداوند حکیم و در واقع علیم در واقع برقرار می شود خب انشالله که مطالب ما سودمند بوده باشد اگر طولانیم شد ببخشید همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سفارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو